یا تندرستی اورمزد پناه باد دیرزی بشنی شاد باد یتا اهو اهوه و اتارتوش اشاد چیت هچا و انکه اوش دزدام رنگ هو شیاوتنا نام اینه اوش چا اهورا ریگوبی و ددت واسدارم تندرستی دیر زیوشنی اواید خرننگ حد اشوی دار آفریدگان مینوان و گیتیان و امشاست بندان میزد روشن همه برساد این دودمان شاد باد آفرین باد همه کسان را زرتشتی دین شاد باد ایدون باد خواهان باد هورمزد خدا را همه انجمن را دین زراتشتی را همه بهدینان را تندرستی نیکنامی تندرستی زندگانی تندرستی فراخ روزی تندرستی شادی و رامشنی تندرستی تنه با زندگانی دراز باد دیر بدار شاد بدار تندرست بدار ایدون بدار بر سر ارزانیان بدار سالهای بسیار روزهای بیشمار جاوید و پاینده بدار صد هزاران هزار آفرین باد سال خجسته باد روز فرخ باد ماه فرخنده باد چندین سال چندین روز چندین ماه بسیار سال ارزانی دار یه و نیایش رادی و زور و برشنه اشویی دار اول هما کار و کرفه ها تندرستی باد رادی باد نیکی باد خوبی باد ایدون باد ایدون تاج باد په اورمزد و همشاسپندان کامه باد عشونه عشم و هو بوشتا وستی، بوشتا احمایی، یت اشایی و هشتایی